و آله طیبین الطافین المعصومین علیه سدر مرحله‌هاش میشه احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. در احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. احمر. در کتاب خصول به اطلاع که دو کتاب متعرفت بوده شده از در خصول دوبار متعرفت این مسئله شده یه آن خواستم مراجعه کنم یه باره مناسبتی تو بحث مقدمه واجب متعرفت این بحث شده یه هم به مناسبتی در بحث اشتحاب و مناسبت جاهلای و یا نه اون تقریبا مثلا ثقافه هشتیاد و نهوته اون یکی مثلا سی ساد و چهر کتاب فسول دوبار ایشان متعرض شدن اینه که مقموم شیخم در مبحث فجردی نازره به کلمات سهار فسوله که در حوضه رو بوده و اما به دوازه در کل به اسطلاح فقه اسلامی عاصری بیشتر این تعرض رو حتی روایات رو رو حدیث از همون جریان روایتی که دیروز عرض کردیم روایات علی درخله از اثر المسلمات سیف همین و ازجا و در کتب اهل سنت به صفت گل‌باری اسم زدن و قال فلان مربوط به میت تغییر ایشون اگر کسی از حرام کرد اون کار حرام میشه یعنی استنادا مهم که این دلیلشون بر مسئله تجربی و گرمت فعل متجبابه همون روایت عبو بکر است از مسلمان به سیفه ما لعنه ها در آقشتا لعنه ها اعراض فکر صاحبی کردم اهل سنت و جبون حدیث تعلیقاتی دارن اولا باز دو مرفته میکنم می کنم. از صحابه کسی اون حدیث رو غیر از عبو بکر نکرده نسبت دادن به یک سنه ازی بحیل موسای عشق علیده که گفتن ساگز نیست از ابو بکر و خود اونها هم مرده قبول نکردن گفتن این رعی ابو بکر بوده تو مثلا در جنگ جمن باید به ناسا مثلا یک کلون طرف نیاد نه به طرف آریشه و طریقه و همیور مونی سلامالله هلی خودشون تقصیح میکنن که این رعی شازه و صحیحی دیگی نسته در از نگیر همان باز مصرح تنجا رو موجود دارن یعنی بحث و متحدش دارن در از بگردیست و باز هم تثقیل دارن ادهشون که این حدیث هستی میشه به ظاهرش عرض کرد باز همشون بر اصابیه و بعض هم تثقیل دارن که لعنه و احراض قبل صاحبه گفتن خب این معبول نیست کسی که اراده قرصی داشته با کسی که به فعل کشته داره نیست وق قاتل قاتل ثم بول المقتول فقال و اراده قتل صاحبه مگر نیست قاتل با کسی که قصد قتلی داشته در یک عذاب دروز در میامند کلام فنا خلقات ال فنا لذا متعرض این شدن که این اراده قتل صاحبه این به خاطر اینکه متصدی شده شنجیر گرفته مثلا به جنگ او پرداخته مراد اینه و همین ارازه هم در قاتل هست و در قاتل ارازه هست و هست در مقصود فقط ارازه هست در کتابی که نوشتن تصریح بید چون واقعا هم حدیث عجوغری بیست که یه قاتل و مقتول حوضایی برجی باشه خیلی عرض و عجوغری بیست حالا قیل از این که انتباهش رو این خبیز خواسته روی تو قصه جمل بکنه و هدفشون هم این بوده که همین ممنون در آتش بالله. از این هدف خبیز اصلا خود مطلب هم روشن نیست و لذا آمدن گفتن کلاه ما فنار من جهت اراده اما اهده همار قاتل به کلاه آخری که قاتل نیست اما این یکی اضافه داره غیر جهت اراده عملا هم به قبل متلبس شده و ظاهرا من فکر میکنم این فرد حواس درستی نداشته مراد این بوده که پیغمه رو لنه بود قاتل صاحبه چون در نبایت دیگر تو این قتال المؤمن کفران و سباب رو فسوبان خود قتال این دو تا عنوان حرامه یکی عنوان خفل مؤمن که این موجود خلود در ناره و من یخطور مؤمنم متحمدن و جزا عبو جهن نبا خالدن بیا یعنی اصلا موجود خلوده یک حرمتی دیگر هم ماله قتال المؤمن. بقید. نه قتل المومن خودت این میخواسته این مطلب رو بگه شعور درستی نداشته نسونسته واقعا انصافه نه تعصب باشه مثلا شخصی که در سال هشتومه هجرت حالا بعد جنگ تاریخ مسلمان شده و وارد اسلام شده کلش درک از رسول الله اشهالا مدینه هم نبوده کلن درکش از رسول دو سال بود دو سال مثلا خورده ای این مثلا بیاد آقون قیاس با همی رو نبامونی سلام الله علیه که قبل از با فکرم بروده سنت رسول الله رو از مثل عبد بگیرن حالا غیر از این که مادرش سمیه است، از کردن برادر مادری و به زیاده نبیه سمیه مادر هر دوست قدره هاشون فرمی کنن الان مادره هاشون این واقعا انسان ترجیح می که اهل سنت برای کشف سنت رسول الله به چه مثل بخاری دو بار این حدیث در کتاب خودش نهار کرده که عمده هم اساسیشون اون اساسیشون و اعتراض برهمی و مومنین سر آمال الله علیه این روایت قابل قبولیشون در کلمات اصحاب آمده نه عجیبی که واقعا خیلی تحکیب آور آرام مثل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی که کلن رواده در فقیه و کافی نیوانده صدوق اصلا در علال و شرایع و, و در علال و شرایع بابی داره در نام نواده بابا نواده خود علال و شرایع جزا مصنباته که دیگه باز نواده رو و شرایع. خیلی دقت صدور رو اختزار میکنه که با چه دقت این حدیث رو در اون باب عجیب قلب بود علایه حاله و انصافن هم بله مجموعه ی روایاتی رو که شیخ و آیات شیخ در اینجا آیات هم ذهر کردی که استاد روایات متوقفی همتست کن او تخفوی حاصل کن به الله آیات هم ذهر کردن هم شیخ و روایات از مجموعه این آیات و روایات اونی که سریعه که به خاطر خود اراده اراده حرام خداوند جذا میده همین روایاتی انصابشینه دقیقه واضاف مثلا نیت المؤمن خیر ومن امره یا نیت کافر شر من امره این سریع نیست که خود نیت منشئ میشه که در مقابل مثلا عمل را حرام بکنه مثلا میخواد آب بخوره به نیت چوبخند داره آب میخوره این این نیست نیت مرشئ که این نیست نیت کافر چون ظاهریش اینه که نیت چون اساس زندگی انسانه چون دایی اون محرک است، اون نیت بهتر از خود عمله چون نیت هم به دنبال عمل داره نه اینکه که مراد این باشه که مثلا اگر نیت حرام کرد عملی که حرامید حرام بشه از این در نمیاد یا مثلا من یک طول نفسن فکر من قتل نفسم فکر قتل چون, چون نیت مثلا نیت لحاظه نیه مثلا که قتل یک انسان مثل قتل همه ظاهرش در این آیه مبارکه و خب اینجا سؤال معروفه که به خب لحاظه قتل یک واحد که قتل مهدم نیست یعنی شما من قتل نستافه کردم و قتل ناسیجه میاد. قتل یک انسان یک انسان مهدم خب فراغانه زاهره همه که بعضی هم اینجا تنظیر به لحاظه واحد و مردم نیست تنزیل به لحاظ خود قاتل نه به لحاظ مقتول ابتداعی تصابه میشه تنزیل به لحاظ مقتوله که یک مقتول واحد به منزل همه مردم. ظاهرا تنزیل به لحاظ قاتله اینه چیلی که این نظر بکشه همین قاتل میتونه بقیه هم بکشه نه اینکه تنزیل به لحاظ مقتول باشه نیه یک طور خیر امن عمله یا شر امن عمله نه این توضیح و اجمانین عرض و برایش به خود این مورد نیست، اما یک نکته لطیفی کلمه خیر و شر در زبان عربی دو معنا داره، هر دوشون. هم خیر و هم شره. گاهی احترزیل، گاهی صفت مشوره این اشتباه میشه. یعنی گاهی به معنای خیر، یعنی بهتر گاهی خیر و معنای خوب اشتباه میشه. کلمه این نکته رو را راست هم میگه، جلال سیوتی یه به ساله ای داره در حیاتی خیران دکن مماتی خیران دکن خب این چطور میشه اگر حیاتیشان چون به بنش بهتر از مرگیشان بعضی اینگه مرگ من خیره خب من نداره که لقدر حیات بهتره بیا خوص بهتره حیاتی خیران دکن ایشون توضیح در اونجا و شواهدن و حقم با ایشان درست هم از که کلمه خیر در اینجا به معنی خوبه ن این نقطه ایست که ذریف هست لطیف در زبان عربی هم شر معنای معنی گاهی بده معنی بدتر خیر هم همینطور گاهی معنی خوبه گاهی معنی خوبتر این نیت و معمن من و من عمله به دو جور هم تفسیر شده نیت بهتر از عمل اوست این خوبتر اخیه اگه نیت خوب نیت از عمل اوست که این من عمله رو بسیار خبر بعد خبر بیدیم نیت المومن خیرون این یک خبر نیت المومن من عمله. من تو خیلی بریده گفته شده چون توجیهات زیاد در این حدیث شده من نیم که من بازه بحث بشم مثل مضمومه در شوبت و دولار شوبت و مسابیه حل مشکلات الاخبا مفصل اونجا شده توی باز هم سوال جواب شده که همی که نیت المومن خیرون من هم من بحث درم وقتی که الان محل کلام ماست این است که یک فعل حلال یا فعلی که اصلا انجام نشده به مجرد نیت برش معامله بشه از این روایت نیت و کافر شب و من اول این در نمیاد حاص دقت بورو ان تو جو معافیت تو یا حاصل کن به الله این است که این در نمیاد انصافاً دلالت این آیات و روایات خوشن نیست غیر از همین حدیث چرا؟ این حدیث و اراد فخر صاحبه خب دلالتش ارادا وکه این حدیث هم حرص کرده قیل از مشکلات فراوانی که داره ظاهرم خود راوی نقل به معنی کرده و نفهمیده مراد رسول الله مراد اینه که علائم کلون منهما هما مقاسلون دخی احدهما قاتلون و کلون من هما مقاسلون درنه ها اراده قتل صاحبه دقیقی داریم ولی یعنی معناه هایی که اراده انسان اراده میکنه یو آقا فلنا ولذا ممکنه از اینجور بگیم اون که قاتل یخلت فلنا با من یک سو مؤمنم میترده اونی که مبتود لا یخلت استحاب بگه از این فرق بین این دو تا، فرق بگذاریم بین قاتل و مقاتل بگیم مقاتل لا یخلت فلنا اما قاتل یو خلد و به نسایه مبارکه پس این در حقیقت حدیث این بوده هو قاتل این قاتل رو برداشت که اراده عراض خسته داره. یا حالا مثلا زبانش اینطور در عراض خسته ساهده رو معنی مقاتله و اونجا دیگه وقتی یکره اراده نیست اشتباه شده اونجا خود عمل حرام به سالون موز پفر رو, رو و سبابه بود پسو خود همین که انسان اصلعه بکشه به جان محمد خود این حرامه قتل یک عنوان دیگریه اون موجب تخدیبه خلود در آتش دقت فرمودید پس این روشنتون مرا... روشن جدی مراد جدی رسول الله لعنه هو قاتل عقا نه لعنه اراده قتل صاحبه که بگیم به مجرد اراده قتل انسان حکم قاتل پیدا میکنه به و خلل در فنار چون که قاتل خلل ولی اصلا معقول نیست خب کسی روی که کسی کشته ولی اون مقصود هم در صدر کشتن اون بوده در حال فتای بوده بگیم هر دو در درکات آتش و در در درکات یه حالت واحده دارن که قابل تأثیر نیست پس این اشکال استاد رضوان الله تعالی اشکال استادیشون اشکال سندی کردن و یا دلالی صافاً چیز درستی در این جهت نداری که با روایات به اصطلاح اصل بخواد معارضه بکنه و کلا اصل این روایاتی که در این مقام آمده که بعضی از اشان بالغه حد تواتر من تقریبا همیشه مراجعه کردم اصلا زیاد نیست ولی توی سیا و داره ذاتن که اوثق و همه قاصر است سند نه قاصر است سند مگه اونایی که روایتی میگه عمل را اونوا خاصره اما در مجموعش صحیح و سند داره اما به درد کار به اصطلاح نمیخوره و اما اون روایاتی که گفته است این که اگر همه به معصیه فعلها کثرت ذوا حسنه البته لسان بعضیش با هم اختلاف داره شون بست اون بحث نیست ما پیدم با این روایات و اسانیدش رو بررسیش نمیشیم اما به صورت اجمالی ارزو میکنم تفصیل بحثی دیگه, دیگه میخواب به صورت اجمالی از مجموعه آیات و روایات چنین ظاهر میشه که اصولا بین عمل خیر و عمل شر یکی از فوالد مهمش دو مقام امتصال هست یعنی عمل خیر نه اینکه یک خیل واقعی است یک واقعی است اصلا یک ثوارغ واقعی بین این دو دوتا هست یکی از ثوارغ واقعیش اینه که اگر انسان طاعتی انجام داد خیر انجام داد این ده برابر جزا میشه اما اگر محصیتی انجام داد یک برابر یک است که از مجموعه آیات بره بارم حالا چه تفسیری داره چه نقطهی داره یعنی ما تو بحضاقشی طول می کشه. یکی از سواه اینه که رابطه ای این بلاحاد خود عمل،, عمل در تکمینش در صحب تکمینش این خصلت رو داره که کار خوب که انما کار خوب یک این اکاس طبیعی داره در کل وجود یک کار خوب شما این اکاس در همه جهات داره و در نتیجه منچه میشه که به صورت ده تا حسنه ثبت بشه یا یک درهند قرض به منزله 18 درهمی که در روایت داره یک جهت و یک جهت دیگه باز اون رابطه ای که به لحاظ معنوی بین شخص و عمل پیدا میشه یکی از توالفش اینه که در باب محصیت اگر انسان خسر بکنه و اراجه بکنه و مقدماتش رو انجام بده ولی خودش انجام نداد معذور ده و اما اگر خودش هم انجام داد یکیه و اما نسبت در عمل خیل همین که قصد بکنه خود این ثواب داره ولی انجام هم نده این هم از سواره. حالا شاید تو بحث های آن ندیم بحث بشیم این هست شاید این ما فارغ رو به لحاظ حکم عقلی نبینیم بین اطاعت و بین انقیاب بین تجربی و بین انقیاب بین تمرد برقانون و بین امقیاد در امقیاد این فرم رو داره که اولا به مجرد نیگیت و مجرد غص ثواب داده میشه بلکه یک روایت ما داریم پیش ما یک جوره پیش احل سنت جوری جوریگه حالا ما در وقت این شد اهل سنت اون روایت به عنوان منبله بفرق. اگر حالون اون کانپیس در این کتاب کنزل عمال منبله نگیرن منبله که اهل سنت ام رسول الله نحنن من قیل از منبله رو این اشتباه نشه اشتباه شده منشه اشتباه چون محومه مجلسی در ماه ها کمیده احادیس منبله است بین فریعه نه بین ما متواطر هست نه بین احادیس منبله هست یه منبله ای سنی ها دارن اگر کانکیون نگاه کنید کنزل دو جهه کنزل اعمال هست من خودم صفحش در آن سرفش رو ذهن من نیزید دو جهه کنزل اعمال هست اون هم با هم احادیسون نه به تحبیر منبل این هم یه نکته غیبی است که از الطاق اللهی اون نکته اینه که اگر یه خیلی اونجا از اهل سنت این است اگر به انسانی مؤمنی ببینه که مثلا فلانکار ثواب دار مثلا زیادت هزه رزار که میزن روز ده و لرزه مثلا ثواب کذایی این تو خلبش آرزو بکنه به فهم این ثواب در اهل سنت منبله اونه ثواب هلا عمله بعد این رو آرزو بکنه، یکی از الفاظی که خدا بر اون موفقش کنه با اون کار یه یکی از خواره حالا غیر از اینکه حسنه بر اون نوشته میشه مثلا در یک روایت بکنه که اگر کسی مثلا پیاده کر나라فت میتونه ثواب داره آرزو بکنه که اگه خدا توفیق بذایه کار انجام بدن یکی از خصلت هایی که خداوند هست توفیق صحیح از اسباب نحوله عمل الخير خداوند متعال توفیق میده اون انجام بدن. این هم دارم سنی هم دارم مانگرین ما به تعبیر دیگری داریم سنی هم به تعبیر منبله دارم من برای به اهل سنت مران اینه نه اون من منبله که ما داریم که اگر ثوابی به شرطه و آرزو بکنه خدا برو برای ما انجام بینه این یه که از مجموع روایات در میاد و بحثی هم به این مسئله بقول آقلی و بحث اصولی که ما الان داریم مربوط میشه یک نوع تفضل الهی یا یکی سری در اثار وجود داره که فیران نیمه خیلی وارد این بحث به این اشکال اول استاد که خب انصافاً وارده یعنی انصافاً عمده حدیث هم همون حدیث اراده قفل صاحبه که سنیان به اون کرده کردن که اون از کرده را جواب من بله اون روایت بلا حافظ ایشون اشکال تندید دارن ایشون میفرمائند ضعیف و سند کس نبوی الملحوق نه از ضعف تامش مهمتر ضعف دلالتشه ضعف دلالتش لانه و اراده کلام نیست درست این درنه و قاتل اخا نکته اونه پس نیت نیست واسط نیت نیست بعد اشکال دومیشون ایشون مفاد این باید مؤاخذه و محاسبه بر نیت معصیت واقعی است یعنی اون موردش اینجاست که انسان واقعا یک حرام واقعی رو دست بکنه و اما کم آقا مورد و نبوی الملکور اما مانحنفی حرام ها خیالیشون بحثمون در تجربی، این خیال می کنه شرب پس اون بباید شامل مانحنفی نمیشه از کار این اشکالیست که پیش میاد این توضیحش کن آقا ممکنه این شالا یا رسال کنگیز فرمزین و بعد بفرمایید علکه در صدر شیخ بحثی روش مطرح کرد اون تجربی به مناسبت بحثه که انسان قصد ایجاد کنه و قطعش مصادره وا در اصل در اشعار بحثا روایات همین نیت عراض اراده قصر رو اونجا آورده لذا ممکن است این به ذهن اندیشان بیاد که این روایات راضی با تجربی رو که که این روایات رقی و انصاف قلیه اگر روایات تام بشه سندن و دلازن چرا چه برم میکنن توش ملاکش ملاک تجریت اونا هست از این مددش عراض قبل صاحبه یعنی اون اراده نفسانیش که تمام بود متلبسه به مقدماتی هم شد یعنی اون نکته روایت اینه اراده قتل این مؤمن رو کرده از دستش گرفته روشن کشیده، زحمت همی تیشیده که او رو بکشه خب موفقه این اونو کش به الا موقع همین نقطه به اینه تو تجربیه همه چه فهم که این خمره و به عنوان خمر و به عنوان مخالفت شارعه برداشت خورد بعد آب در آمه نکته اینه سوال اینه آیا مرگون شهر که روایات نیست رو توی بحث را سال ارده این با عنوان تجربی میخوره یا می یاده میخوره عنوان تجربی مخالفت یک جایی که انسان قرد تجاه میکنه به تحبیل و بعد این ققت انسان مطابقه بود سوال اینه آیا این روایت به درک این با میخوره سوال آرخویی بشمال نیبیخوره آرخویی بگر و عراض حقیل صاحبه چون این محصف واقعی بوده قطعی صاحبه و عراضه این با مانحنفی که مثلا شراب کن آب درامت نمیخوره. نیخوره از اوست ما تو هم بسته از, از سالم اونجا توضیح این انسان به به نظر من بحثه. به نظر من اگر این روایت سندن به لالتن تام باشه به درد مانحنفی میخوره فرد نمیکنه. چون به هر حال ایشون عراض محصیتن نام به شرق الخن. من متلدستم شد کارسرم برداری سر شدی تو که آب در آنه دو جای پس واقعی چه فرقی میکنه عراضه صاحبه صاحبه؟ فیضو انجام چی فیضو؟ شما اشکال اون ج... اشکال منه که اینجا احقاد حده احقا بگیم اون بحث دیگری آقای از این راه وارد نشده هست تجردی میگیم عاشا داشتن احسن خوی از این راه وارد نشه ناخیشی نشاله شرعی کرده یعنی و رفقاند دیگران اراده رو گرفتن اون توجیه من بودش ما اشغالون کی گشتت به ولارت نداره چون اونجا عنوان قتال المؤمن خودش حرامه اونجا بحث اراده نیست وقتی آخوری رو دیگه دیگران گرفتن که اگر اراده در حرام ولن به اون کار حرام سوال بتاع ما كمان هذا قد المقدمات هو درست لانه ممكن ان روايات صارت تجلي نده تجلي يعني ان عرب فعلا بيبي ده انجام نده چرا که تجاریه دید؟ اطلا انجام نده؟ نده باشه، اینجا همین شده شربخم، عراض شربخم انجام نشد آبا که خورده آبا که خورده؟ بخور آب که حرام نیسی شربخم نشد بگیم؟ شربخم نشد بگیم؟ ببینید شما دو برسه یه برس اینه که بگیم استدلال مثل آقاکوی و شیخ دیگران درسته اینا چی فهمیدن؟ اینا فقط ارادتال قدر خودش حرامه. اراده رو این توجیه من بود که عراض قفل صاحبه لعنه ها بود خود قطار حرامه نه این که عراضه خود قطار حرامه این اشکاله این اشکاله بودیشیم که حرف هرزم همون استاد رو گرسی که ارا خب فیلمانه همون رو و عراض شروع باشن چه فهم مستده باشه این ها که انجام می داد یک کار باید انجام داده بود. اینم حالتون، اونم شما قتال گرفتیم باز دیگه که بعد اشاله. چه شما قتال گرفتیم یعنی اراضی قتل، صاحبه اراضی قتل، یعنی قتال حرام. این که ما قبول کردیم. انا رو، واقعا مباره و انجامش شده. این فکر میکنه حرامه. نه ایجاد اراده کرده این اصلا کار حرام را اراده کرده اگه انجام میدادم واقعا کار حرام را اراده کرده اگه به ظاهر درک بشه خب واقعا اگه انجام بده آب و بخار آب صورت کار موجود خب چون چون شما یه دکاه نه آره تو میگی اراده قرض اراده تو اراده تو کل خاطر موریدو در قطعه هم نگفتی چی نکته فرمدی؟ چون رواید نطوره ترقا سلویلون محطول فرمه قول سویه آره سویه آره آره که ما بارو محطول قول لرنه و عراض یعنی که همه ما فائل القصد و مورید القصد هنوز آفشن یه اونم دورش میرسید نمی کنیم خب چون اون خطاله اون اشکال برده هست که اون قطاله اصلا ربطی به ما نحنفی نداره اون ا اون دست دیگری دقت کنید، این نیکی اینجوت هم ازش خوب دقت بکنید، اینایی که میگن قاتل و مورد قتل فنا، پس ماگو شاربول خان و مورد شربول خان فنا چه وارمودن؟ اونایی که دقت میکنید چه وارمیدن؟ اونایی که اینجوت هرسی کردن، اونا میخوان کلام رسول اینجوت هرسو کنند قاتل و مورد قتل فنا، خوشابی خب شاربول خان و مورد شربول خان فنا چه وارمودن؟ یکیه. و توجیه من بود که اصلا روایت ربطی به تجربی نداره تو صوبار تجربی نیست چرا؟ جاید. چون خود قسال حرامه کاری به تجربی نداره اون همین که شمشیر کشیده زده به طرف مقابل کنیم قتال قتال حرامه به قرار کنیم بحث به اشکال من بر نگردیم که آرخوی به ظاهر عبارت گیرستن مثلا آرخوی و دیگرم آرخوی هم نهیده نه برنه حرام اگر ظاهرش این طور باشه باید این طور بگید محی در خط و پارس هر دو فننا پس ماری به شروع خم به شار در هر دو فننا محی در شروع خم درست فننا ولی وقت پایلی داره به تجلیه اعتباس نه انتا هستان خارجه شروع؟ تجلیه مرتکل شده مرتکل چی شده؟ نه مرتکل چی شده؟ این نه مرت نه در اراضر قرد مرتقب قرد, مرتب قرد شده مرتقب امتحال شده نه خیل روشن شد آقا متجادی به همه نفو من خم خب هم چی میکنه؟ اگر اینطور باشه باشی باید اینجور استمتاش نکنم اراضر یک اختصاص بای نداری یه بحثیه. که آیا اون رواياتی که شیخ ورده به درد ما نهنفی میخوره یا نه دقیق فهمیدین چون در عمل همه به معذیه عراض المعذیه گفتم یهباره از معسكر معسكر واقعی فی ما نهنفی مرکز خیالیست خیال می‌کنه این خمره من میخوام این عرض می‌کنم معنای هر دوی یکی این نقطه فنی رو می‌خوام بگم اگر از اون روايات معلوم بشه مولید القطر با خاطر هر دو در نار اگر اگه این اثبات بشه خب موری به شوق با خنباشتاره برده در ناره چه با هم که این روایات به در باب تجاوی نمیخوره نمیخوره نقطه ای که در باب تجاوی هست به اینیست روایات موجوده این نقطه این دوم ایشون شما این خب اینجا همه معصت واقعی خب معصت که واقعی نشده کاراش کرده خوب نکته اینه اراده‌اشو به خم کرده این کاسرام پیدا کرده رفته شراب‌خووشی خم رم گرفته اشتباه شراب‌خوشیش آب انگول زده مثلا جه شراب تمام مقدمات انجام زده پول نخون داده آوردن بوده سعی کرده آب انگول شراب نیست سوال سر اینه اون روایات شما اینجا میره نمیشه دوست روایت نه همه به معجزه است قبول دره اون روایت اراض المعثیه اون روایت اراض المعثیه شامل ما نحنفی میشه به نظر من میشه چه نمیکنه میکنه گناه کردن گناه کردن دیگه مقدمات تلفظ شده كده نه شده این یعنی به نظر من اون مناسی که در روایات وجوده به اینها در اینجا موجوده بحث سوم انه لو صلی الله نکه من فضا عام من اما اشکال اینی روز همون دید قایت ما یستفاده از این روایه اینی که خود این به اصطلاح قصد حرام با عنوان قبع فائلی فهمیدید میشه و اما این که خود عمل هم حرام بشه مثلا شربه آ بعد دیگه این که قصد شربه شمکرد حرام بشه این نه اینم اشکال ثبا میشون این اشکال ثبا میشون مثلا اشکال دوبا میشون منتفیه به خاطر این که اگر ما باشیم و ظاهر رواید این طوره مفادره های مرید و قصل و قاصل کلاه فنا، این ظاهر رواید اگه بخواییم ظاهر رواید اخس بکنیم و ظاهرش این, این که با اینکه که فعل انجام داده این مرید فقط ارازه کرده حالا شما می فهمد که این قبول نمیکنیم یا ضعف سند داره یا همون اشکلاده که من احس کنم دیگریه به اگر بنابرای این روایت ها کسی خدای نکته قبول بکنه کبیش و قابل بکنه بیست ظاهرش این طوره. یعنی اگر انسان ارادی که عمل حرام کرد و مقدماتش را انجام داد اون کارش حرامه، اون مقدمات به همی مناسات هم محلومتها در بحث فسول آورده پس جواب صحیح این است که اول این روایت که روایت اساسی مقامه به نظر ما کاملا جلیه و اگر جلیه صرف نباشه ظاهرن ابو بخره بد میگه اصلا کلن بد سهم میگه می فیغمبر مقاسد قتال حرام به و مؤمن اونی که آسله حساب تیگه داره و اما عنوان قتال بر هر دو صدر میکنه هم آسل مقاتله، هم محتول مقاتله، هر دو به لحاظ قتال گناهکارن به لحاظ قتال اما قاتل غیر از جرد قتل هم داره ظاهرن این درست نفهمیده مطلب رو ملتفه نشده قرباتی کرده خراب کرده این و انصاف قضیه ما روایاتی که داریم منحیس المجموع عرض کردم تا اونجایی که من تو ذهنم هست مصدر اول کتاب کافی جلد دوم و ارباب الیوان و, و الکف بابی داره باب من یه هم و بالمعصیه و بابش اینه و در مقدمه وسائلم به مناسبتی بابی قرار داده مراجعه کم جوامع احادیث تو مقدمه ابواب مقدماتش نیارده چون جوامع احادیث یه جای دیگه این باب رو ذکر کرده و شاید کسی اول پیدا کردن بعد معذب شدن تو جوامع احادیث مقدمات نیارده کجاوزه ندونم کجایی را که ابواب جهاد نفس و الا معروفه ای اونجا باشه مناسب چون یه نظر روایت همشه اونجا بوده مرحوم صاحب در اون انصافا از مجموعه روایات استفاده میشه که اگر انسان قصد حرام کرد و حرام واقع نشد او برای او ثباب نشه البته این هست ظاهر روایات در اونجایی که به اختیارش گناه نکنه زون زون نه این هست البته چون داره منهم به سیعه خلم یه عملها نظریه اراده قاطع کی میکنه چون ای مثلا اراده هرامون مثل چون منجر به میشه چون نبوده شما که اراده قاطع داشته امبره شما که اراده رو به معنی کسال نه, نه, نه, نه, نه من ارادهابی وقتی تو آتش دیگه خبه خبه خبه شما, شما اگر این عثایی برداشتین مثلا راه در یکی از تو خونش بکشین ببینین که نیستش باز میش شما تو آست عروزه قضیه اینه میگن نه شما نه حالا شوربه خرب نه شوربه خرب اجازه اجازه کسی اصله برداشت کنه مبادا مامون و اذهان بر مامون موضوعش تو خونه نبود ولی در خونه احمد برای نیستش تو خونه فراش واطن بکنن نبود خب برگشت می‌دونم بگیم این فن لرنه و عراب قاسم صاحبه. نه با نه ای این چه او این که من چرا چون این این حالا ببین عزیز من حسابش. شعره الله این سؤال اصله برداشت به خونه برادر مؤمنش نبود. برگشت آیا این فنار به همین مقدار لنده و عراض قفل صاحبه سؤال خب اونه سه هر بودی از بسیار هر بودی در این مطلب هر شما بیاییه میتونه سر اما به نظر من یه چیش میکنه هر دو از این حرام ها نیچه خب میشه فهم اما زایش لعنتمو تعلیم دادیم یه ندیل رو تو از سر مجاز انتخاب میکنیم خب حالا این بحث خارج میشه این وقتی در روايات انصافا از مجموعه روایات اف استفاده میشه این که من قطعا فیلمش دو رایان این روایات هم این رباید اگه اشکال این روازه که اشکال آیا خوبی بیای این روازه باشه وارده مرازی ما امروز فیلم تا وقت داخل این روازه نظر به همه کابح فاعلیه مثل من قتل من قتل نفسان فکرم را... بله واسه اینکه که اشکال سه که این ناظر به قبع است من اصلا گروهات همشه نخونه نیکشه من رضیه به فعل قومه غیر از این سنده درسته شد تو نمیره رو مرسله آمده من رضیه به فعل قومه, قومه... غیر از استفاده سنده ظاهرش که داخل یعنی مثل اوناسی یعنی به لحاظ اگر بذلفاظ ظاهر شد تنذیر بذلفاظ اثبات میکنه عمل حرامه. چون عملی انجام میداده دراتن این اشکال سوم عایقویی توی ایده از اون روایات میاد اشکال سومه اشکال درسته چون جمله از روایتی که یک امره مستحب راسته. هرچه سوم میشن خوششون فرمیدن که توضیح بده راجید در اواز نقل صائبه درست نیست اما راجید بعضی از روایات این اشکال است و که از اون وعده کابح فایری در میاد. نه اینکه اون کابح سرایت بکنه به عمل عمل حرام بشه. مثلا فرضیه کسی آب آب میخوره، لکن به هیئتی اینه که شراب خندر نسنجی رو بله مثل اون هیئت که مصنف یابشونو سینمای میکنه، در آب میخوره. بله این به لحاظ کابح فایری قبیله کارسشیه. اما آب خورده برکه آب خورده مثل این که اون هیئت اونها رو بگیره. میشه اینکه ارتباط تلبس ذن زن, زن به واسه مرد و مرد به زن این در حقیقت به این عنوان اونجا که عنوان خاص خود ایشون عنوان خود تلبس داره لكن در این جلوجا کار کارتر اینه که این ها قبه فاعلی در میاد اما قبه فعلی از این روایات الان تغییر صحتش باز هم قبه فعلی در میاد این اشاره ایشون بود به هر حال یکی دلائلی که در ما نحنفی این طرح مسئله رو از واقعه روایات شناسخت کردن یکی تمثل که به اصطلاح روایات که صحباً روایاتی نداریم که درست باشه سندن و دلالتن هم به این مصطفال که انسان اگر یک عمل مباده و انجام دارد بسید اعتقاد و حرمت داشت یا به حسد حرام بود خب یا به حیعت فعل حرام بود فعلی جایزه اما به, فعل، به حیعت فعل این هیئت ها و قصد ها بیاد اون عمل مباح رو حرام بکنه این از روایات این در سوال اینه که اون عمل مباح بشه حرام از مجموعه این روایات این مطلب در اینا اون روایت عراطه خدیجه ها مثلا مرادش این نیست علا تعبیر صحت این واجبه بدون بسطه الان ما اونیت نتیجته به معنی فعل نفسانی حرام چرا این اون قبح قائلی قائلی قائلی تاثیر قبح به فعل نمی‌رسه سوال اینه نه فقه خارجی نه نیت در روز که هم التوب دو مافیارد تمام نیت‌ها انسان نقش شادرا بیاد اما به لحاظ اینکه این نیت این منشأ بشه عمل خارجی من از مباه بشه حرام این محل کلامه مؤثر و باشه اثر و اثبات و غربت یک عمل رو نمی‌تونه بکنه مثلا فرض ما الان اثبات و حرمت یک الان میتونه بهانه بر اسم مثلا آیه دیگه میتونه اثبات و حرمت می بخاطه نیت نه انصافا باشه و دلیل دوم میشه شد تعبدی اجماع چون ذکر شده که ایدی که اگر زن باشه طریق مسئول کلی که میخواد درد خطر داره نمازش باید تمام بخونه جزء موارد اباحه به سفر نیست که نمازش قص بخونه و تماسل رو به اجماع زن دیگه وقت اجماعی در اون مسئله دار کنند که ازیاد بردی از کلمان فردان دارید مرمون شیخ هم دارید هستان خدمه اول لیکن مسئله اجماع باشوندار فقری تا متمام باشن روشن نیست و علا تغییرش جوابهای متعذید دارید خیلی طولانی ازیاد بحث کردن جواب و اساسش همون کلمه که ما سابقا عرض کردید زن یک حالت خاص نیست. قیل از یقینه که در اون حالت یقین به اصطلاح کاشف صرف خوف و زن و حرج نفسانی برای کاشخیت از واقع زن حالات خاصه ممکن ممکنه حف و حالات خوف باشه در غیر حالات خوف نباشه نمیدیم انسانی که در راهی داره میریم میترسه نمازش باید تمام بکنه اما اگر یقین داشته باشه که اینجا این هست و حالت خوف برای اونه باشه خوب دقت بکنید اون قلوانش خوافه یا زن نه. ممکن است برای حالت زن چون زن یک قصور ادراکی یک نوع حالت, حالت هر از خود زن خودشون یه قصور کلمه از این بحث ما این شده در بحث زن از بعد از خیلیم بر... زواهر اجتماعی رنه با غاد غا را اختصاد رنه با اختصاد. چون هر دو در قرآن هم هست و ما غیبه به غنی اونجا با غاد بل. اونجا این اومدن فرق بین این دو گذاشتن به ذهن ما میاد که صحیح که بین این دو تا ای نیست. اونی که با واو و اونی که با واو افت فرقی نمی کنه؟ اصلا ما یه بحث لغوی و تاریخی هم در لغت عرب داره که از این کلماتی که از این دوتا هم با هم فرق ظاهراً یه بعضی از الفاظ در لغت عرب به لهجات برمی‌گشتن مثلا یسوتو و یسد با سین و صاد و ذراز و شراز در انجام با سین تلفظ کردن و انجام باسا حالا واظن بحث می کنه نیست مجموعه اشتغاقات این دو خود قدون با مراجعه به تبادر عربی این ماده چه واد باشه چه وا باشه زنگ اصول معنای قصوره کم بوده کمی یعنی یک نوع کم داشته باشه چیزی حالا یا قصور ادراکی یا قصور, این قصور ادراکی هم جهات مختلف داره که این شاید در محل خودش عرض میکنه پس ممکن است رو این حالات اگر اون اجماع هم ثابت باشه اولا ممکن تعباب باشه خب رفتی نداره و در این حالات حکم باشه که در حال یقین نباشه این دوتا الان تقدیر ثبوت این مختص به مورد خودشه تعدیه ازش نمیشه کرد و الان کل تقدیره اگر فرس که در یک موردی زن روی جدی هجر جد شد اصفات یک قاعده کلی و اصولی و اهلی که الان محل کلام با اون مقدر نمیشه انجام کرد پس ترسل که به اجماع و ربارات مشهد روشن نیست این از زاویه یه بحث فقهی یا بحث منقول خجری و روایات این از این زاویه انصافت نمیشه استفاده کرد از مجموعه اجماعاتی که ادار شده یا ربارات. که اگر انسانی نسان یقین به یک عمل حرام پیدا کرد این یقین اون منشأ میشه که اون عمل قوید بشه این بحث اینه حالا این نمیخواست اینو در طول برشیم فرد را دیگه سرم که در دوبام اون جهت اصولی رو پیگیری بکنیم و اون رو حلش بکنیم این جهت رو این همه جهتی که علام محل کلامه و این بحثی